واضحات از روایات بود که ادعای که هم دلالت میکنه بر عدم حجیت زواهر کتاب مثل عرض از این روایات شدیم که تا اینجا انساطا روایت واضحی که واضح باشه یه روایتی اجمالا دلالت میکرد بر به هم سند روشنی نزایش هم محکومش واضح نبود یه روایتی که کاملا واضح باید محسود حضرات اخواری ها تا فعلا که پیدا نکردیم حالا ببینیم بعد روایات این روایاتی که شد که مرحوم صاحب وسائل قبل الله سره، تو این مسئله بعد روایات رو به ترتیب اول از کتاب کافی آورده. حالا با این که ایشون نظرشون علع سحق علع سحق. بعد از کتاب فقیح حالان است که حالا یا کتاب فقیح یا از مرموم شیخ صدوق حالا تو فقیح هم نباشیم از آثار مرموم شیخ صدوق حالبسه به لحاظه سردی بعضیاش اصح فلاصح نیستن خودشون احلم هم این حدیث ظاهرم به شما چهار رسیدیم که از رعیان ابن سلسی و چهار ان رزاله السلام احتمال بده این از ریان علت باشه و ریان بن باشه نه ریان بن سعد ظاهر اون کسی که با حضرت بوده در این سفر خراسان و تا مرگ و پیش مأمون هم عنوانی داشته همون ریان بن شعیب که با عنوان دایی مقتسم برادر مأمون البته برادری که از مادرشون جداست اینا از هجایی به تاریخ حصولا چون هارون سه تا خلیفه بعد خودش رو به ترتیب معین کرده بود اول محمد که ملقب شد به امین که این مادرش بود بعد عبدالله که ملقب شد معمون و بعد قاسم که ملقبش کرد به معتمن محمد امین که خب یک ایک سال خورده برشان که کشته شد دروای بابرگرش اون سه بومی که حصولا خلیفه نشد قاسم به جای خاصم معتصم خلیفه شد که حارم به او وصیت نکرده بود معتصم عباسی معروف و از عجایب روزگار تمام خلابایی که بعد از اینا تمام از اولاد است نه از اولاد امین اولاد نرمو و نه اولاد معتن هیچ کس خلیفه نشد بله معتصم به عباسی که از عجایب روزگار پدر به نفر وصیت کرده بود تمام خلاف های بنی عباس تاون آخرشو مستعتن که به دست مغور کشته شد همشون از های این معتصم هم معتصم عباسی از این سفه که خدا قرار داده بود که شده به خلافت نرسید انه ریانت نشتبید ظاهرن شدید باشه انه رضا علیه السلام فی حدیث ان معمون سعد علماء الاراب و خراسان ان قولی تاالا سم مورسن از کتاب لذین استقینا من عبادنا فقال العلماء فقالت العلماء اراد الله بذلك الامه کله فقال المعمون ما تقول یا ابوالحسن فقال رضا علیه السلام لو اراد الامه لکانت باجماع اهل جنة مناظرات طولانی است که در کتاب مرحوم صدوق ابن اخبار رضا این مناظرات آمده فعلا در مصادر موجود ما جای دیگه نیامده یعنی در این که ما داریم خیلی قطعات کمشه اگه جیامزه بیشترش تو همین کتاب صدوقه و به لحاظ اصانیت هم مشکل داره. بله بعد میگه که پسارت و راست کتاب لده افرت تاهره لالغیره قال المعمون و منل افرت تاهره فقال رضا علیه السلام الذین و صفاهم الله فی کتابه و قال انم و الله و انکم ریس اهل البيت اهل البيت و یفاهرکن تخیرات و همون لذین قادر رسول الله اینی مخلفون پیپ و متقلین الله به اطرتی اهل بید البته این حدیث که ریان نمی شدید حالا به حسب این نقل از حساب نرم کرده یکی از متون حدیث سقلین حدیث ثقلین غیر از اینکه که اثانی داره خیلی از بحثای دلال اینها متونش هم خیلی مختلفه متون خود حدیث اونی که در سیه مسلمه یه متنه اما متون دیگری دی هم داره را از در سه بخاری حدیثتان اومده و در این دو کتاب معروفشون فقط مسلم حدیث غلیمه داره بعد بعد یه متنش اینه ایوه ناس لا تو علمو هم فعنه هم اعلم و منکو هم این نقطه هی مهمیه این در همه متون حدیث نیست از خودم بارد بحث حدیث غلیم بشیم طولانی میشه این کار خوبی که انسان متون حدیث رو با دقت نگاه بکنه و معلوم بشه مثلا اون مقدار رو که اهل سنت یا خصوص مسلم آورده، تا چه مقداره یه چون نمخواهی این بحث ها خدا هایم باید مراجعه کنم البته مرحوم های صاحب اعباقا میگه حامل حسین در اون جلد کتاب به اصخیلات یه جلدش مربوطه به حدیث سوال اینه که این سابقا حدود 24 ساعت در اصفهان چاپ جلی شده شده، اولین قسمت عبقات شاپ چاپ شد همین حدیث سر این در شیش جن خود ایشون تقریبا سر کدر همه متون بیاره اما مشوق شده مثلا فقال امی تار و فی روایت نمی مخلق کن پشت هم همه متون و اختلافات رو پشت سر هم رو که دیگه کاملا مشوق کرده مثلا دو سر با موتون مختلف، نه این رسمش اینه که با حسانید مختلف و مسادر مختلف متون مختلف بیاد و ارزیابی هم بشی حدیث شماره 35 در کتاب توحید بعد هم از روایات مرحوم صدوق ان جعفر ابن علی نلقومی ایشان درست ما بیشان آشنه در مرد بزرگواری از مشاریخ شیخ صدوق هم هست در طبعا رتبه ایشون هم هست جعفر ابن علی چندتا کتاب داریم به اون کتاب بیشتر معروبه که کتاب الغایاته کتاب الهروسه مسلسلاته مرد بزرگواریست اما به هر حال روایاتی که متفرقا زیاد داره حالا مقید نبوده که هزن سعید باشه ان عبدان یا عبدان ابن سعید عبدان ابن الفضل نمی کلا ان محمد بن یعقوب ابن محمد جعفری اینو غالباً باید از اولاد جعفر تیار باشه غالبا نمیشناسید ان محمد بن احمد ابن شجاع الفرغانی خیلی روایت اینمون ورغصه اصلش تو قم بوده خیلی به فرغانه و نه لولا مال فرغانه بوده بله محمد بن احمد ابن شجاع فرغانی ایشون نمیشنسی اینجا نمیذارم شما الان دارم وصای اینجا نوشته ان حسن بن حماد انبری همینطور چاپ شده وصای بلا اون تاپ جهیل و سال همینطوره؟ هاشیه. هاشیه داره؟ آه مخواستم این رویه چون من خودم سابقه نانگاه کردن اینی که در کتاب توبیل هست عبدالحسن محمد ابن حماد الانبری به مصر از این حدیث خیلی این طرف اون طرف هسته ان اسماهیل هم نمیشنسی ان اسماهیل ابن عبدالجلیل یا عبدالخلیل برقی ایشون هم نمیشنسی ابو عبد البخاري وحده بن ره حالا این با شبه استاد صدوق رو شناسه. ولی صدوق حدیث را مطلقا از استادش نمی‌شنید که امام صادق کلیه طبعاً مقبولاً بلا استثناء. فقط صدوق که اول سنده می‌شناسیم و امام صادق اینجا علنا استادشی نمی‌شناسیم و وحده بن ره بن ره می‌شناسیم. ابن عبد البخاري وحده بن ره بن ره قرشی احتمالاً از مسادر سنت گرفته که در عالم خود اهل سنت هم اونلاین نداشته چون وحل ابن وحر قرشی پیش خود اهل سنت و پیش ما متهم به وضع حدیثه من احس کردم احلا درجات ضعف حدیث وضعه اینی که الان من بردازی نوشتهای معاصر این حدیث موضوع آمین اینا هرکای بیاساسه اصولا در میان اهل سنت خیلی توجه داشتن که بحث وضع رو از بحث مثلا زعف جدا بکنن مثلا بگن حدیف زعیب کن مثلا به, عدم جهالت، به جهالت یا به عدم شناسه اما ورد دیگه اون درجه بالاست خودش نتوزه جهل حدیث کرده این عبول وقتری قاضی مدینه هم بوده مدتی میگن امام صادق مادرش رو ازدهار شنیم در مادبار در کتاب آمده ای ایشون یک رساله ای رو یک جزوه ای رو به امام صادق منصوب کرده با هم این صندق انه صادق انه عبی ان آباد مثلا انه عبی انه جدهی بعضی هاشن علی قال رسوله بعضی هاشن مثل اینجا این رو البته در موان اهل سنت موجوده اهل سنت این نسخه نقل کردن فیل ما هم آمده این نسخه نهارو شده البته بعضی از بزرگانمون ما نرشن و آهادی سوود سدیده نرشن خ این اشاره به اینه که چون قاضی هم بوده میشه که معلومه که وصول به درس خورده بوده خیلی استادانه شعر میเกرد از خصائص این شعر این است که وقتی میخواست از حدیث جعل بکنه هم شواهدش پیدا میเกرد و هم با تبعات خاصی در کتاب تاریخ بغداد داره کان یع تر و حدیث دن الحدیث اون شواهد بیار قابل اینکهش برای جعل حدیث چون در ساده رس بود میدونن که چون چراغ نبودن از ولشد میخاویدن از شد میخاویدن این بیشتار بیدارهایی بوشیه برای جعل حدیث است. از هر در جعل و جعالی جزء زرگول مثل هاست وحلوبن وحلق قراشی انصال سر متفقان علیه بین ما و آمه حالا یک شرح هم داره که برزر احاطیسش در کتاب معتبر ما. ما هم آمه داره ای کتاب توفید که ای کتاب در دوسته ما احتراج به شرح دیگه الان نمیخوام اون بست بشن ان اهل البصرہ كتبوا الی الحسین ابن علی علیه السلام یعنی خودش مشوت جرب که اهل بصره نامه برزه سردا نوشتن یسالونهم عن الصمد سکت علیه بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد صلوات و تفود این حدیث به درد مرحوم ساز و سوال نمیخوره تو ولا این معلومه کسانی که حتی از مفسرین احل سنت نظرکی صحبت می کنم به علم فهمی سمیه تو جدی رسول الله صلی الله علیه و علیه بگیم اهل سنت اینجا اینجور بحثه دارن که چه مقدار از احادیث امام حسن از رسول الله ثابته چه مقدار حادیث امام حسین از رسول الله چون دارن در بخاری هم داره اند حسن رسول الله داره حالا اون بحثاش یه جای دیگه است که اینجا جشن است. یا خُلُم منقالت القرآن علم، فلیت باب و مقداری اون ندارد. آیا مطلبش خوبه؟ درست اما کیفیت مطلب جال، نامهایی نوشته داده، دیده شده، اینها جالیه. اما از مطلبش از خوبه. و فی ایون ال اخبار، باز از روایات مرغوم صدوق در اون ال اخبار، بال اسناد ال اطی، امل تحلب این کلمه ای اسناد ال اطی نه این حالا مثلا پنج حدیث بعد این سند رو داره. در آخر وسایل در خاتمه وسایل ایشان خود صاحب وسائل اون که حدیث تختیر کرده سند توی آخر وسایل رو برده چون اونجا یک جا رو برده. چون سند رو یک جا مراد در آتی در این عبارتی ایشان به این چافی دست من جلد نورزهان به این چاف جدیدی که آنها به چافرمودن جلد سیوم به اسناد الهاتی اونجا ان الفضل بن شازان انرزه مفصل توضیح کردیم که فضل نشازان شازان حجرزاد درک نکرده و این اینا غیر اساسی است البته این در میان قومی ها بوده شرحی داره که الان جاش مناسبش اینجا نیست بغدادی ها اینو قبول نکردن و حقا با بغدادی هاست البته در کتاب مرحوم تو حافظ العقول هم آمده این کتاب المامون اون کتاب المامون کتاب را اله محض ال محضول اسلام شهادت اهل لا إله إلا الله و تصیح به کتاب از صادق و الان گفته اند نهوا هرکن کلّ من خاتمه تی ای لا خاتمه به محکمه و متشابه و خاصی و آمنی و وعده و وعیدی و ناسخی و منسوخی و پساصی و, و اخباری از که در اول بحث اگر یاد آورنی که داشتید ازند زند باشه اصل یه بحث کلی راجع به تقسیم بندی آیات قرآنه اصلا بحث کلی تقسیم بندی آیات قرآنه اصل اونی که ما الان در قرآن داریم فقط یکیه من آیات و محکمات اون نعن مرتفع و اخر متشابه این تقسیم تقسیم آیات قرآن در خود قرآن یه مورده محکم و متشابه البته در قرآن داریم ما نن سخمن آیت اونون سا نعته به خیرن خب این هم به ناسخ و منسوخ از کل اونی که در قرآن آمده محکم و متشابه ناسخ و منسوخ اون پروشت روی یه باش از عهد صحابه این تقسیمات اضافه شد شد محکم متشابه ناسخ منسوخ آم و خاص بقید فرمونید این یه تاریخی داره مثلا اینجا و عزبزان اسمت داده شده یه آشارش اینشالله میگیم که یکی. زهر، برخن، ظاهر ظاهر و باطن گذشت این ما در قرآن نداریم ظاهر و باطن تا یه حدیث در ظاهر و باطن گذشت که فرضی ضعیف بود این چند جوره اینها بیشتر میخوره به قرنهای سموم در واقع این تصمیم بندی اینشان را عرض میکنی مثلا تو اول کتاب تفسیر علی ابن افراهیم همین هم هست آه محکم، محشابه، خاص، ناصف، منصور این سنخ تحبیل رو چون اینجا دیگه مفصل آمده میخوام برداردین اینها منصوب به شده مثل اینجا برداردزا و انصافش واضح نیست هیچ وجه ما این رو برداردزا نسبت نمیدیم میخوره تو های سوم این شده این تقسیم بندی اینجوری حالا بعد تقسیمات دیگری هم آمده که بعد از. یکی یکی در ذله من میخوام این نقاط فنی اثر رو هدفه بعد فهمیدم وعندنا دلیل بعده هو الهجت علی المؤمنین و الناطق عن القرآن و العالم با اخو و خلفته و بالیو این که از روز به یک مقام شناخت اینطور بنیمیس نم خیلی ام بایده و وسیله او و الولی علی او علیوب نبیتالم این مکان مثل تو اوضاع قوم مثل جو اصل و شما بین خودش یه باشه. و ذکر الامه چون اون چی که حضرت میخواستن معلومستن برمونه که ایشون مثلا خریف هست و امیل المؤمنی علمان بیان میشد و گفته میشد و قطعا علماء با این مقدار حاضر رو در بیان و این من خالقون بالمغل تارکوند حق والخدا و انهم المعبرون عن القرآن یا و انهم نمیدار قبلش کرسوز فرس بوده و ناتقون عن الرسول بالبیان این درست اصلا این ربایت ربایت قبلی این ها تمام مباحث کلامیه رابطه این بحث اصولی ما نداره ما بحثی کلام داریم یک بحث اصولی است در کتاب خسال حدیث شماره 37 مروم صدوق ان محمد بن علی ماجی روی ارس کردیم برد قابل اعتماد از مشاهق صدوق ببخشیم توسیقی نداره جدش و پدرشن چرا ما خودش نداره ان محمد بن عبل قاسم این محمد بن عبل قاسم جدشه اسکرین در کتاب سالون شأن عمی هم الى الان نعم چند ساله تو وسیله جل هم سرد نمودی این جد بشه نجاشین نشه جد بشه محمد بن نعلی قاسم اما صدوق میگه ان عمی تو صدور نمیشه یه جوری بود تصور رو ان محمد بن علی یا محمد بن سنان نمیذونم الان در کتاب خصال اون جله اینجا اینجا واو نوشته خواهد هم باید ان باشه واو جاش نیست این محمد بن علیشم با توصیف محمد بن علی کوفی سیرفی ابو سمینه این در بین طایفه ما كثير از این اشعر به کذب نداریم رو کذابی همین آقای محمد بن علی سیرفی اصلا این کذاب دارن جواب یک معنای دیگه از ذهنتون توادل میکنه در حال ایشون اصلش کوفه بوده آمده قوم یه مقدار از میراث کوفه رو در قم داده یکیش هم همینه کتاب محمد بن سنا یا کتاب مفضل نامه عمر از روات این آثاره ان محمد ابن سنان ان مفضل ان جابر ابن یزید جوفی به اصطلاح حدیث لحظه تو خط قلوب و خط زعب و اینها ان سعید ابن مسید که از تابعین معروفه اما عبدالرحمن ابن سماره قال قال لا لعن الله المجادلین فی دین الله علا لسان سبعی نبیه من جادل فی آیات الله کفر بحث تمسو که به زباقی قرآن مجادله نیست نه قال الله تعالی ما یا جادل فی آیات الله الا الذین کفرون و من سر القرآن برای احادیث تفسیر قرآن برعی در نصادر عامم هست فردفتر الله الكذر و من افتن ناس به غیر علم لحنت و ملائکت و سماوات و کل و کلو بدعتن زلاله اینا هست اینا تیکی تیکی تو و تحرسنت هست و کلو زلالتن سبیل و حائل این تیکه اخیرش تو بخاری هم باشه الان تو ذهن من حضور نداره. سند فوق العاده عاد اما ربکی هم به ما نحنفی نداره چون بحث تفصیل قرآن به رعی این جدادانه در آخر متعرض میشه. حدیث شماره سی و هشت محمد ابن خاضل برگی تا اینجا روایت صدو اول روایت کلینی، بعد روایت صدو از اینجا وارد روایت مرحوم برقی بیشه مرحوم و روایات محاسن برقی رو امرده احمد بن محمد بن خالد برقی در کتاب محاسن البته به بلحاظ تاریخی چون برقی یک طبقه با یک طبقه استاد کلینیه بلحاظ تاریخی مناسب بود اول برقی نبیانه چون قبل از کلینیه بعد کلینی بعد صدور انا احمدت و محمدت احمدت و محمدت من خالق انا حسن چی داره کتابه شما؟ هاشیه نداره؟ نه هاشیه ایچی نداره؟ خیلی هرچی که دیارم جامعه احادیس نداری؟ کجام داره جامعه نشد اون مراجعه <تصحك our God> در زيد در اینجا اینطوره انل حسن بن علی فضال ابن, ابن پدر حسن ابن پدر که از اجلاد این مااصول خب اینجوری نوشته پس سناد او از ابی عبد الذکر اهمی دیگه اینم از این سوال و سؤالات بخوب بشه دیگه سوال و سال اینجوری ورده انل حسن بن فضال ام میمون خیلی مرد بزرگواری میمون امن حدثم و امن المحلق نخونه ایست قال قال ابو عبدالله فی رساله این حدیث این سند در محاسن هست ما یک حدیث قبل از این حدیثه یک حدیث قبل از اینه سندش اینه سا و سال ظاهرا ظاهرن سند از یک حدیث گرفتی محنی از حدیث بعدیه اما این حدیثی که در محاسن هست اینطوره. طوره انو انعبی امن ذکر و انعبی عبدالله اصلا با این سند کلا فرق میکنه اما خود برقی خیلی احادیثش خریز یعنی جل بهنظ و عفا و رو کرد پدرش هم همینطور طور محمد بن خالد که برقی پدر میگه اونم هم همینطور تازه عن من و ابی عبدالله خیلی حدیث بلاوزه سندی مشکل داره دقیقاً همین پس وسائل اشتباه کرده این سند هست در برقی. راسته مال حدیث قبل از منه چرا که فرضش سند اون حدیث بین بی چسننده. از اشتباه که نه یک چسننده دسته. شعر سال و سال عجل ما تصور احتمال این که با تدریس که در سال و سال نمیجوش مثلا احتمال یک میلیارد در سال و سال امدم این کاری کرد. کرده. اشتباهی شما. علای سند حدیث برقی از پدرش از ام بن ذکره و انوی عبدالله و فی رسالته. خب این اهمیت بیشتری پیدا میکنه که نامی باشه مال علی عبدالله. از کردم ایده از سوزان ما رسائل هندره جمع کرده مثل کلینی این کتاب ما نرسیده تا سال‌ها موجود بوده تاغن حفص ما آثار کتاب رو داریم از قرن هفتم به بعد یکی از جثا ما از این کتاب نرسیده اگه پیدا بشه به نظر من خیلی مشکلات رو حل می‌کنه کتاب رسالانه توزیعش نشد از طرف دیگه و یکی هم مرحوم علم الهدا که سر فیزه این اخیراً در 4045 سال چاپ شده معادر و به که کتاب ویلایی میکند اولو دشنگه خیلی زحمت کشید این جوزه نامه‌ای است که معو عبد الله نسبت داده شده هیچ مستر دیگه هم ایر ناق نکرده الان منحصر در کتاب برقی هیچ جای دیگه‌ای نمند دقت میکنه خوب این مرت یک مقداری بازوش کار بشه فع اما ما سعده ان القران کتاب دکیام هست نمیدونیم مثلا ببینید و اما ما اگر کتاب کلینی پیدا بشه امکه اینجا که از کلین نقل شاید در اونجا باشه و بدونیم مثلا سوال چی بوده فضالکه ایران من خطرات کل متفاوته مختلفه، تعابیر به تعابیر بعدی میخوره به جعلی میخوره به ما مصادرین لعن القرآن لیسه علامازه کرد و کل ما سمت فمعناه علاقهی را مازه ها به علی هر چمشنیدی حرفات باطله. و کل ما سمع البته طبق قاعده کل رو درخت بکنی مبتداست فمعناها خبره البته فا بر خبر در می نمیون میگین زيبون کا فاایمون چون جایی که اسم معنای شرطیت توش خیده باشه توش در خبرش خواه میاد لا فا در جزای شرط میاد نه در مبتدا خبر مبتدا و کل ما سمع فمعناهو جای فا نیست به این معناه چون کل ما سمه مثل اله ریعتینی فله همان. اونجا هم همینطوره استاد و کل ما سمه فمعناهو علا غیر ما ذهبت الی. و این نمو القرآن امثال و... حالا این چی بوده ما درست هم نمی که کلمه درست نرشد لقومن یعلمون دون غیره این نمو که اینجا آمده دیگه بحث آیات احکام نیست کل قرآن اینطوره اگر این حدیث تمام بشه به نیست آیات احکام لایم تمس و آیات احکام کل قرآن قرآنو امثال دون غیره و حق و به کل و باران راشود اننا القران امثال قوم یعلمون دون غیرهم و لقوم یعلمونه حق تلاوته و هم لبین یؤمنون به و یعرفونه این احادیثی که مردم صحابه و سایر این حدیث دلالت از هر بهتره این شاء این حدیث خیلی خوبه این حدیث خاملا معایده با مطلبی سه مرموم اللہ محمد این استرابادی داره و اما غیره هم فما اشد اشکال له هم ضبط کلمات رو به لحاظ قراعات نحلی و سرفیشم دقیقه سکنم سر. و لقوم یسلونه هو حق طلاوته و هم لذین یؤمنون به و یعرفونه و اما غیره تمام اشد اشکاله و, علیه و من مذاهب قلوبهم و رسول الله الله عليه یک میتلافه است ما اختلاف میخواد من قلوب رجال من تفسیر و فی و عجمعون. این خیلی تحکیل که تمام مردم در حیرت اختادن الا شا ال... من شاء الله و اینما اراد اللهو به تعمیتی تعمی مثل مهمه که ما میگیم از اما منه کوریه اما مهمه همینطوره یعنی این خیلی عجیبه. این حدیث میگه خدا اندر قرآن رو مهمه قرار داده و گرفت تا سوال میپنی؟ و انما اراد الله به تعمیتی فیداله خدا اندن ای رو مثل مواما قرار داد نه این حالا شاکن خودش معما در آمد چرا این ینته و الابا بهی و سراته برای که مردم به احضایت مراجعه کنن این روایت این صافت هست تو این جایی شماره سیون پیشتی و این روایت از همه روایت سابر بهتر به آمده است و می اصلا میگه قرآن اندن به صورت مواماست غیر احل ب و تازه آیات الاحکام میتران قصص و انبیاء و توحید و معاد و قیامت و تمام قرآن اینجوره و اینما اراد الله به تعمیتی فیداله ان ینتهو الى بابهی و سراته و ان یعبدو یعنی حالت تعبد داشته باشن چرا نمیت تعبدو بوده حالت تسلیم داشته باشن و ینتهو فی قوله الى طاعت القلام به کتابه و برگردن اون این چه قالمه به کتاب هم خوب دقت میکنید لن ناتقین ان انره و ان به تو محتاج و من منذاله استنباط بکنم خوب دقت بکنید استنبات بکنم ولکه انهم هم لا ان انقصه خود از اونها اگر ان استنباطی هست بعد از تفسیر اونهاست ان هم لا ان انقصه و ین یستن به تو و من که ان هم لا ان انفصه هم تو مقال و لرسول امر هم لعلمه ها لذین یستن به تو نهو من هم فا اما ان غیره هم و لقد علم تعنه لا يستقيم ان يكون الخلق كلهم ولاه الامر نمیشه همه مردم مثل اهل بیت بشن همان ولی هم باشن لعنهم لا يجدون من يعتنون پس اینا ولی بوده متعال و, و امر الله و ولات خداوند ولات رو از خواست قرار داد این عبارتی در وسائل اینجا اگر باشه عبارت در داریم هم خونده بشه اما چون محاسن اینطوره طوره لیقتدیه بهم من لم هم بداله خلاقا خواست خرار داده که غیر خواست به اینها مراجعه کنه لیقتدیه به بهم مکنی که در کتاب محاسن اینطوره طوره لیقتدیه بهم هم من نم هم بداله فرد هم داله که انشاءالله و ایاق و ایاق و تلامت القرآن به رأیه اینجا تفسیر نیست، قلابتا برای فی امن ناس خیر مشترکین فی علمه کشتراک هم فی ما سواه من الامور ولا قادرین علیه ولا علا تحویله من اینجوری که میکنم در کتاب هست خیلی از نگیده که در محاسه مخوندم ولا قادرین علیه ولا علا تحویله الا من حده و بابه جعله الله لهم خام ان انشاءالله رفت و به امر و من منکانه تجب ان شاء الله البته این حدیث الان منفردن در کتاب محاسن آمده جای دیگه‌ای نمونده ما چرا ان عرض کردیم ببینید حدیث رو حتی با وضع موجودش نگاه بکنید این خیلی مهمه برای شما که ارزیابی بکنید فرض این حدیث مال امام صادق باشه چون که مرسله این دلیل یه مستری مثل کتاب محاسن توسط پدرش نرفته اون راوی هم ازم بردن خیلی ابهام اجمال افرادی که میدونم متصاحلن در حدیث از محاسن به بعد مثل کافی بساهر کتاب اصلا نیامده این حدیث نیامده من محسن اگر در نظر بگیم کنن یه رساله از امامه این نیامده تا آمده زمان اخباری ها قدم ده هم یاد ده هم اخباری وقتی همین سیر تاریخی که انسان می‌بینه حس می‌کنه که این نمیتونه قابل اعتماد باشه یا لاعقل اقل این همون طور باشه که در روایت دیگه اس مسئله ورود بغیر در تفسیر و بیان و واقعی قرآن نه اینکه تمسکات ظاهری بلکه این حدیث به حسب ظاهر اینطوره راسته لكن به لحاظ حاضر مصدر و به لحاظ به اردیابی تندی قابل اعتماد نیست یه نکته هست در کتاب محاسل مرحوم نجاشی و شیخ حذا دارن که زید فیه منقص کتاب محاسن باز به این علامت تصیفی کتاب گرفتن خب مثلا این حدیث در این نسخه ای که دست ما هست موجوده اما در کُلّی نقد نکرده یعنی اون تو نسخه نبوده یا تو کلی نبوده که نقد نکرد از فرهم که من صادران توضیحی دادم زید فیه و ناقص این معناش حتما زعف کتاب نیست شباه نشه خوب دقت بکن اگر زیاد و نقیصه مرجش به رواط و درجات روات باشه بعده مثلا, مثلا از این کتاب چند نفر تحقیق کردن کتاب و سائله تحقیق که پلان و پلان کرده خیلی دقیق نیست تحقیق که پلان کرد دقیق این راسته ارزش کتاب رو ارزیابیش رو مشکل میکنه کنه مقبات به نصحیه که کاملا صحیحه و کاملا درسته مراجعه شد. اما گاه یه اوقات فیه و نقص از خود محلقه این اشتباه نشه مثلا مرموم برقی، اول که کتاب محاسن احادیث کرده مثلا 2000 حدیث داشته. تا عمر ایشان 30 سال بوده. این بار مثال می خوام. حدیثه. بعد که نگاه کرده، مراجعه کرده، همون چیزایی که خودش هر معارض پیدا کرده، از اونها درس برداشته. در سن 40 سالگی که واضی این کتاب محاسن حدیث بکنه، یک مقدارش رو خودش برگشته، این که روات اصلی شده. از آن زمان ما کاملا مفروض معینه دیگه چاپ اول چاپ دوم دیگه اضافه کمون زیاد چاپ سوم چاپ چهارم چاپ اینا مال چاپونه نیست مال خوده علفه یه احتمال بسیار قوی در کتاب زیدفیه و ناقص مرحوم برقی این باشه که نسخش متفاوتن مربوط به روات نباشه که ما ببینیم با اودا مناقشه شاید خود برقی عرض کرده بله این مطلب هست ما الان اگر بخوایم بگیم این اختیار بغیت الان گیر داریم مثلا توی یه نسخه هست توی یه نسخه نیست اینه که من توضیح دادم کلینی غالبا میگه عدته من از حالون این عدته من هست حال مخاط اشاره در تمام نسخ هست حالا اگه این در تمام نسخ بوده چرا کلاغه نقد نکردهه که خیلی مذهون تولانیز و نامر هست از نظر و اونا نامر که خب اصحاب باید بیشتر بکنن به حال اینها برای ما روشن نیست این حدیثو فعلا قبولش بسیار مشکله موضافن به اینکه ارسال داره موضافن به اینکه شواهد معیزشین جای دیگه نیامده خیلی انفراد شدیده و لذا احتمالاً مراد حضرت نهی نه اون شخص بوده نه مراد این باشه که هیچ کس نباید قران مراجعه بکنه حدیث شماره 39 هم در آخره لخته بازم از برقیان محمد بن اسماعیل احتمالش حاد باشه شاید محمد بن اسماعیل قمرنکی بوده در او بوده انه عبی سعید عبی اسمایل سراج اینه ایشون نمیشنسید ان خیسمت بلکه احتمال داره از اهل سنت باشه ان خیسمت ابن عبدالرحمن جعفی این شخص در میانه اهل سنت بیشتر مقام داره که ما از اونها روایت داره شخصیت اجتماعی هست و احتمالا بله مراد نجاشی هم بطیقه وجیفون یعنی از وجوه اجتماعی چرا حالی حال داره که حال جاش انتلیست. نکات لطیف اینجا هست که جاش اینجا نیست طولانی حجر منطقه ای که الان اصطلاح هم ما بهش بحرین و قطیف و احسا این کل منطقه را هجر میگفتن حجر شامل کل دین میشه خود جزیره اصلی بحرین که الان من آمدرش واقعه در متون قدیم اوال میگفتن اوال غیر از حجره. لذا بحرین شامل هجر هم میشود هجر هم هم میتون. ان ابی جعفر علیه السلام ان رجلن البته اینجا حرز کرده ایشون قال و انتا الذي تقول لیسه شیعون من کتاب الله الا معروف قال ليس ها کذا قلت انما قلت و این طور نیست کتاب لیسه شیعون من کتاب الله الا عليه دلیل و ناطفان عن الله این کتابه من مالا یعلم هنس الا انقال ان للقرآن ظاهرن و باطنن این تخصیم بندی که عرض کردن این هم یکمک این قدیدی تر اینه به امام باقید نسبت دادن که سند نداره و معاینن معاین در اینجا اونجا چی شاب کرده؟ معاین شاب کرده؟ در محاسن معانیه اینجا معاینن معانی معاینن که غلطه و معانیه و ناسخن و منسوخن و و متشابن و سننن و انفعالن و فسنن و وسنن و احرافن و تسریفن حالا اون احرافن تصویرون فمنظم همهنر کتاب مبهمان فراد حلکه و احلک خود مرحوم سال وسائل یک توجیهی برای این عبارت کردن چون ظاهر وقت صدر و, و هم نمیخوره متاسفانه امهام طولی داره و و حدیث شماره چههن که دیگه تمامش بکنیم و انعوی همهنرز ابن سوید یحیبن امران و این سنت صحیح انر قرآن و حدودن که حدود دار این درسته یعنی قرآن حد و مرز داره هر کسی میتونه برای خودش در قرآن تفسیر این مطلب درسته اما این آدم و آیات رفتی بما نداره و سال الله علیه و آسیه